برشده چونتون رو؟ برشده بودیم تا عطا رو وقتی به هم یاد بله، عرض کنم که توی شاهنامه که هرکی خریده انشال و باشه سال و بایده می‌بینی که بعضی کلمات رو توش علاحت بزنید، حرکت بزنید. مثلا سوار توش او بزرش دست، دو بار. آدم تعجب می‌کنه و اینکه اواموناس بیگن سوار، سواره، سواره و ترفباز درست می‌کنه و ادناسه قدیمه شاهنامه که یا مثلا استوخن رو گفته سخون که هست اینجا این سخون سلام علیکم همیشه این چیز در شاهنامه کلمه استوخن با غرگان و بون و اینا قابلیست و گاهی دوستانی که مثل بند ناشی هستن که می‌گوانیم که تنگی قافیه بوده حکیم کنیم اولا تنگی قافی نیست و یعنی حتی اقل در اقل قافیه یک همه یه حرکت باید مشترک میشه در واقعی نیست سخن سخون با مکون اصلا قافیه نمیشه بعد هم چطور شده که فردوسیه این فردوسیگری این یکی رو همه جا تنگی قافیه گیر میکرد این که درست نیست این دلیلش اینی هست که این رو باید سخون ترفت میکردن و با مکون و گون اینا خافیه کردن، تنها استثناش پوهن راهی سخن و فردوسی با پوهن میکنه. که پوهن خافیه می‌کنه اونم دلیوشی میکنه در قدیم طرف ازش بوده پوهن و کهون و نظایر این موارد بسیاری خرامان مثلا اینجا اما با اقسام حرکات رو می‌بینید اینجا من بانک اینکه از خود تویتر فالویت نپوستیدم که شما به چه حسابی این حرکات رو درستید اما تقریبا یقین دارن بی خودم من پرسیدم زنگ هم بهش زد پاریس زنگ زدم زشتار من پرسیدم تقریبا یقین دارن که اینا رو از بناسی بودشون و این یه نشونه است، نمونه است از ضبط این کلمات در بزگاره بسیار قدیم و توی غالانا، ستر که را ساشتم چون مربوط به این کارها بگینام میگم به شما برای که قدیم دو جور باب وجود داشتیم یکی روش میگن باب و یای مجهول یکی روش میگن باب و الان ما یه جور بیشتر و یا رو نمی کنیم مثلا مسئله منتبه ولی در قدیم باب مجبور و یای مجهول رو به صورت زمه کشیده و کسره کشیده طرف کرد مثلا چیزی که توش نمک داشت گفتن شور الان هم شاید در و در پاکستان مسلمان هست در افغانستان هست اونجا ها خودم در ایران هم هست نمک داشت شرم و اون حیبونه در رنده میشه شیر. یای مجموع شما بارها رو قاطع گویند می‌نیستی، مینی مثلا مثل کلماتی که باوری آلدری می‌نیست، به باور مأجور یا به باور معروف، معروف شدن می‌نیست. که می‌نیست، این نیست معلوم چه معروف است. بعد، این دوتا با هم قافیه نمی‌شد. یعنی شیر در رانده و شیر خوراکی قافیه نمی‌شد بشه. بلکه امشود شیر، امشود شیر. اون واقعیه بیتی در مولانا، کار پاکان را ساز بود مگیر. گرچه مانت اون نسخه درست گرچه مانت در نوشتن شعر و شیر حتما اون شیر خوراکی باید تایی دیت باشه برای اینکه یاش معروف و احتمالاً مولانا در اون دیگار خودش همینجور میشه این دید بعداً هم میبینسته در نوشتن گرچه مانت در نوشتن شعر و اینجا هم همینجور مثلا زنجیر یاش تحرور کنیم و شیر چند که گفتم معطلومت ادبا یه اسطلاعی دارم ما شیر رو در زنجیر نمی کنیم یعنی شیر زنجیر و زنجیر با هم قافیه نمی هر حال از این نکات توی این چیز هست که بهش بر میخورید من خواستم که یادتون باشید که اگر نیدید چنی چیزایی توجه داشته باشید که از کجا و چه چیزی شده حالا بریم به بول و روخه اداثی سر کار ما قصدر نظرت بکنم باب مجهور باب معدوله فرقی داره؟ بله، بله، باب معدوله به کلی چیزی دیگه است به کل و در عوستایی ما دو جور حرف خیه بریم دو تا علامت در یکی خیز که پویستارش هر حرف دیگر یه هم ممکنه یکی دیگه خیلیست که ساکنه ما بعد از عربا یاد گرفتیم که افتداو ساکن محاله در زبانهای فرنگی همه افتداو ساکن دارن ما داشتیم خیلی ساکنه پشتش هم رزوماً واقعه این هنوزم در بعضی نقاط ایران این واقع طلب خود میشه به صورت پنسکه هم اصلا خورشید و خورشی. خورش. در روزگار فردوسی باز همین و همتا در روزگار سعدی هم تلفظ می شده اینه که با مثلا خور رو خوردن با ببر قابیش خور ببر اون باب مفتوحه پشت سر خیر که فقط پشت سر خیه هست و خیه قبلش به قاعده قدیمی ساکنه اونش میگن باب معدوله و معدوله هم بهش میگن یعنی اونول کردن از تلفزش در زبان ما دیگه تلفز میشه و یه مشتی کلمات هست شد یعنه ده تا ده تا دوزد تا یه خوردن با تمام مشتقاتش ارز کنم که خواستن با تمام مشتقاتش خوشیده ارز کنم که خوهره و آبخوست اینکه آبگیره ایناس خوست هست و یه چند دیگه خواهره خواهره خواهره خواهره هست و اینا چیزی که ولی زیاد است. هم حتماً حتما بعد از است بود مرور رو من رو ایکی خوب روی چون همچون پدر نام بود سیاه نام رو بود را دل به دوب زنده بود. به جانش بر از مهر گریان بود یعنی به جانش بر این بر حرف اضافه است هم حرف اضافه است هر حرف اضافه است حرف اضافه کارش مثل سر کلاس که بعدش بعد تعبیر می‌کنه این ازتون adjacency می‌کنه یه ولی خب اینکه حرف اضافه کارش این است که قبل از مفعول به واسطه بعد از مفعول غیر سریع میاد متمم غیر مستقیم حرف و به حسن گفت از علی برسی هم. با حسین گردش شرخم اینا ها پیجابه در سبک قدیم راهی اتفاق نفتاد که دوتا حرف اضافه میوردن یکی پیش از من سری، سریعه یکی بحث سعدی میگه به دریا در منافع بی شما به دریا در این دریا یا, در در در یا به به سون قصده رفیان در حکیم را آن به که بر محک نزنه سیم ناتمان حیال در فروسی زیاده هرچه قدیمتر میدیم این دو حرف اضافه زیادتره و دایی برای تحکیب میادم تا به جانش بر از مه گریان بود منطقه ها اینجا باید توجه رو فهمیم که حتما حرف اضافه دوپا با خود محفظ بخونیم به کلمه بعد گرفتی نداریم به جانش بر از منت گریان بودی بیم جداییش بریان بودی خیلی ظاهرا محصود حکیم است که خیلی نگران احوال این بچه بیست که یه بچه بیشتر نداشت عرض کردم قبلا که یه مرد اصلا دیگه در عوض ساوینا اصلا بچه نداری این داستان به هماسه ملی درست دیگه به جانش بر از منت گریان بودی زبیم جداییش بریان بودی برا آمد بر این بر دوره دو برا آمد بر این تار یک روزگار توزنده دو شد دولت شنگیان <تصفيق> به گیتی نبود دست کس کسی دشمن ها مگر در نهان ریمن آخرمن ها. ها اینا رو قبلا هم فقط راجع به گیتی این بگم که ریشه هی هست و هم در پاسی روسته من در ربستاری جی, جی، و جی. جی و, جی و در, جی و جی و و در هست و در فارسی ما هنوز کلمه جیوه از همونه یعنی چیز زندگی جیوه این چیز زندگی. و معربش شده زیبه برگشتری زیبه, زیبه. هم در کلمه دیتی یعنی جای زندگی به گهان با های مجبور به علفه اون مکان گیهان هم یعنی جای زندگی دوست داره صورت میگه بیسه از جهان اون هم جای زندگی در میون بزرهای سامانیان شخصی اون دونامه ابو عبدالله جهانی یه اون جیم و یه و هه حوض و فرد مهمی هم بوده حضات بلهمی، پدر رو به نمی‌رسه ولی او هم وزیر خیلی مهمدی بوده و جهانی همون، تلفز دیگه چه از همون جهان، جهان، گهان، جهان، جهان، جهان مثل گیهان دیگه جهان، گهانو، بعد در فارسی که اینا زیر شدی زه و زندگی دیگه از کنم که به گیتی، یعنی در جهان نبودش کسی گشپنه این الف هم گوشتن بشنیگن الف اطلاق زیر سکروش هم کندم مگر در نهان ریمن آهرمن ها ریمن همون خود احرمنی هم چون از خواهد صفت به کار برشکندر آهرمن همی رای زد تا پیا گرم یا یال یعنی گردن برات اگر می‌بینید که موی پشت گردن شیر یا عصف رو میگن یال به قاعده علاقه مجابره داره اینکه موی روی گرده داره, داره یال اصلا میگرد بی آکند یال یعنی گردنش کرد آکندن یعنی پر کردن این بچه مدتی مدت یه گذشت تا گردنش همین رای زد تا پیا یا یکی بچه بودش تو گرگ سطور توی همه هیمانات درنده در و زاره هیمانات درنده در بزرگترین مظهر شیارت و خواست گرگ بسیاری از درندگان قدرت شش برای گرگه گرگ, گرگ رو یه ولی هیچ حیفونی ضرر گرگ رو برای که دیگه تویشونو میگیرن توغمه میخورن راه شونو میگیرن بابیشم میزرن خاص که خواست بیرن توی گله اولا ضعیف کشت میاد با با مک و هیده و موازدت تحریب و خسته کردن بعدم بیاد توی گله امونش تمام بستنده میگوش هر شاید این خیال منزیگ گرگ نبودم این چیز رو خیال میکنه ولی ظاهرا نوستی که دو ذهن شدون اون که اینا ها که بی حرکت میافتن و این تابعیم آمد اینا هم تو یکی گرگ بزرگتن هست مزرر از درندگان و بزرگتن حیبون مزرر از گیاهاران هم گرازه که برش هم دو تا زیرش مرتب روشت می‌کنه و این رو پاید بماله به یه چیزی سنگ و خات و این که این هی روشتش کنگ برشت. میاد شش تا جالی زهندونه رو همه رو با این خودشت بر می‌گرد یعنید که بخوری از دوشتش گریده همه همه به این قسمه خربیز و هندونه و هرچی در جالی و داغون می‌کنه این است که کردن پروست هسته بنابراین این بزرگ کردیم مظاهر شر رو گرگ، حالا، با اینا محامله کردن، چون بشر اون با فکر کردیم این قدرت‌های اصلا باشون کنار اومد، تا شون محامله کرد، دو افتار باشون میکردیم یکی این حسن ازشون بود، دکوری در این صورت می تابو از در جانش تابو یعنی این چیزی که اسمشو نیارن نگاهش نگاه باشی نکنن نمیزنی چه بتوانن الان برای همه افراد و شهر اندام های گمسی یعنی بسیار مردم کن تمام عدیان که مثلا زن و شوهر نمیزن اینا اصلا چیز می تواند که نگاه بکنند چیز می تواند؟ این یه راهش بود که مثلا گرد و تاقیم گرفتن اسمشو نمی آوردن من یادم یادمه که مثلا گزندگان ما رو و عقلت و, و می از ما بایتران یا جم نمیزن از ما بایتران اومد یا میگفت اسمشو نبر شب عقلت نگو نبر اسمشو میاد برای رابطه اسم و موسمه که آلا یه وقت دیگری باید بخش کنن آبای دست نیست و یا مثلا میکشتنش بگو کشتن با جفتش اینا همه از هون بیمه یه راهش بود یه راه دیگه همی رشته بهش یعنی عزیزش بود نقش علمشون این این که علم گراز پیکر دارن پاچه ما علم گرز پیکر پی، پی دارنش اینا رو، اینا در هم می خواهند اینجور چیزا حتی خورده می اسم گذاشتن قبیله به،, به اسم این پرندگان و همسال اینا نوعی رشته بوده به اینا که جون ما ما رو ازگرد نکنه ایمان قبلیه پاسته که ما رو این دو روش به سلام مقابله بشر اولیه است با این آفر. و فرد و همین دلیل روش ایرونیام این بوده که روش رشت دادن بوده همین همینگلی اسمش پوزون و فرفانتر میاد یعنی قدید میاد شیر اسمش نمیاد و زیانمند ترینم به این دوتا ترین یکی بچه بودش چون گرگست و تورک دلاغر شده با سپاهی بزرگ جهان شد به هم بچه سپاه باشگان چند؟ دی رو نسکه نگفتم برای کنکی را از کنم که در حوستایی و هم در سنسری. این هست در عوضتایی و سنسکریت اینه که در سنسکریت دعه و خدای حدود در باید بگم که در عدیان باستانی هند دو دسته خدایان وجود داشتن یه دست اسوراها و یه دست دهیوه ها که اسورا هم که در پارسی میشه اهورا همه یه پارسی در سنسلی آهوی دونده رو میگه آهو حتی هند و هند و دو تلفظ از یک یک همه کنم که اسروره ها و دعوه ها هر دو خدایان بود. از وقتی که ایرانی ها جدا میشن، میل دل ایران را بیشتر به طرف اسروره ها بوده و از یک هند اثاره جلوتر ببینیم که, که هندیه های اسروره ها رو پایین تا بلاخره میشه خدای مطمئن در ودا در قسمت قدیمی ودا در ویده ودا اینجور نیست، حضرشون خدا ولی در بخش‌های بعدی و جدیدتر ودا تا ها این منزلاتشون پایین میادت تا بلاخره تفتیل شمشید ایرانی ها میلش دلشون به طرفشون اصوره ها بوده به اعیبه رو کم کم از تخت روی گرد پایین به که بلکه رو دیب اونشه خدایی زشتیو بعد ولی کلمه هست در فرانسه دیو یعنی خدایی اصلاً گره بازه ولی نفسی دیب هاین ها یعنی خدایی دیوین در فرانسه اینا همه با این دعبه هم میشه هست. و به معنی خداش کاخی مونده بازی شد جهان، جهان شد بران دی بچه، سپاه سبخت سیامک، چه از بخت شار اون اولی هم چه چه از وقت سیامک، چه از وقت شار البته من بخت بده، قدیلی است سپاه کرد و نزدیک راه جست همی تخت و دیگیم کیپشا ما فتحه ولی؟ یکی بله درسته برای اینکه وقتی یه ظاهر که کیک شما میگید فتحه به عربی برای اینکه حرکت کسر ملایم با مطابقه با حرکت صدای هاییه بنابراین قبلش کس چپسه میکنم بزنم ای. چه ای یه چکل نمیشه و که ای بگم باید میشه اما اینجا ما هرم کردم توی هواشیش که حوستایی، کبی، گی، و یک دسته از، یک سلسله از سلسله پاتران هماسی نه, نه سلسله پاتران هساسی سلسله پاتران که از کیبوباد کنشه اون من اول چون که مثلا ما در قبلیتی نسخمتی قبلیت داشتیم که لغب میده لغبشون با پیش میشه همچنین این از با اما کیومرس که نداشته کلمه راجب بگم از من من که دیده بودم قبل از میارمم در شاهنامه پیشدادیان پس این کجا بودن؟ جواب این است یکی از پاک هوشنگ، که بهش بوده به هوشنگ پیش داد و داد یعنی قانون پیش داد یعنی که افقیدار قانون قاعده رو از اون کلمه پیش داده و موشنگ پیش دادیان این سر قبل از هر حال. یومر صبحانه نه چندی پیش آنیم، نه چندی فیاض. ولی چیزی که من شاکی میکنم، اینجا نوشته است که نوشته است که دو نسخه از این نسخه هایی که آقای دکتر فردی نوشته که شاه دهه بیرون طول. بعد نوشتم مات مطالعه نه دست نگیسم یعنی یعنی یعنی یعنی که نه دست نگیسم گفت پسوندی که شاه. یک مطلب خیلی مهم است باوحت ذهن یکی از لقب که هست یرشاق یرشاق یا گرشاق به غیر گل هر دو گر گل هر دو من استوره هر تخت و وقتش بر اوقات کو های کنه کنه کنید بود بنده به گمانم میرسن البته این اشته در مقال من نمی قسم از درباز بکنم درست احتمال این هست که این کهی در اصل همون گرشاق بودی کم کهی مثل که یه رو نایرم بالا که همون درست می‌چونستگیم احتمال این هست که این گرشاه باشه که این شاه باشه برحال سپه کرد و نزدگی که موندن یک بچه کرد کردن معنی‌های بسیار متعدد دارد خیلی اینجا معنی ساختن مهاراستن سپه به معنی پخدن کامگس را جان شیرین در تنست گرد آن گردد که حلبا میکنند اینه کردن و کشیدن. این کشیدن دوشت این هرگز این صورت کند صورت کردی یا چنین شاهد قوت در کشپلین صورت کردن یا جای دیگه باز همین شیخ عجب سعیدی که صورت کنند زیبا بر قرمیان و لیکن در امروانش، کنند اگر بگردید شما هم در مطمئن مختلف و یاد داشتون 10 تا بیست برای فهر کردن هم یکی یعنی آراست کردن این ساختن صفح کرد و نزدیک راه جزد. همی تخت و دهیم کشاف بزن و همین با هر کسی راز خویش جهان کرد یک سر قراباز. آواز یکی به محنی الان در پاکستان نمیگم صدا صدا میدید مردیه الان آواز ما به فقط در حالی توی اینجور نبوده. آواز، یعنی صداست و من خاکستان بودم اول افلی که رفتم معهوش شدن کلیفان بخواستم به تهران بود بعد توان کارلند، چیز رو را بزد کارلند رای زنی فرنگی بود میگره بعد به تهرانچه گفت، آواز خرابه به <تصفیح> <تصفیح> آواز یکی بگه از چیز عجیب هم این بود که نوته یک سامو دردن قسمت کرمداد، دوته آدم ما هر جمعی از این خواستیم بخواستیم اسمتو چیه خواستیم که ولد نبود صبح تا شب هر شد، همین آقای همین خراب ما از این, این کیا نامه نام دفترنده. نام به کار که فارسی اسم می‌کردنه‌ی عربی‌سی بلی ما اینجا اسم بودن یعنی تبدیلن نام و یعنی معنی‌سی آواز تو یک، دو به معنی شهرت اینجا و معنی شایع است اصلا صدا نیست. که که آوازه در افتاد که طائب شدم از می‌ید یعنی آوازه در افتاد تو تائب شده از این از این منو دوبه کجا که همین با حت جهان که اثر پرآواز گیومر و خود که یاغا بندر ولی در حقیقت معنی منظور که یاغا یعنی اینوش میگن استثمام این کاری، جمعه منتی ولی مثل که خوش نداشتن بگن به صورت مصفت ولی استثمامی میوردن که جوابش نه بود مثل اینکه مثلا میگه کسی پیر بیاد, بیاد بگم آه حالا میان سر کلاس اون میگه که معذرت میخواد مثلا، جواب که ولی جوابی که تو سه اینو ما دو تا که اون بعد بگه که نه آقا بعد من بگم پس چرا تو این وقت اومدی، بعد باید به یکیم مثلا جایی پاک ولی همه اینو خلاصه میکنم در یه جنبه سوالی، این همی کنیم، بشنگر این از این خود که یاگاه بود که تخت مهیرا، جزو، شاه اینجا البته شاه نبوده ولی مدعی بود به خبر نداشت که برای تاجمه یکا یک بی آمد خجست سروش قسام پریگی پلنگین پروش بگفتش براز این سخون برده در به دشمن چه تازت نمیقا بگم سروش اسم یکی از قرشته های مهم مزرگ این زرگ و وظائفش به نزدیکی به وضعات در عدیان اسلامی به همین دلیل بعدها فرهنگلی سات که فروش همون جبرعی ده ولی فروش همون جبرعی نیست هم ها که کار چابوگن پیام از آلامی جیب و شبیه کار جبری. در ارحال در بعضی فرهنگاه نوشتن و... و راهی در چیزام شاعری در فروش سفروش اسپانی که هم شاهر خوبیست و نیبانشم کود بندو چاپ این سریحا تو شهرش نرسید روش که را ملک را محض و فربران بینگر به این غسیده متین تا کس تواند از شعرا اراق باز باوس هرگز یکی غسیده بیاراستن جمین گشتن به فرق تربیت توچمند که نیستن در اراق مرا نراقه ایش کس کریم مسئول و را ننها خطر گرمیدن به دولت آ. و از هزار شاعر یک تنصیل است از هزار ملک شد یکی دو دوست بروش امین یکی ولی یکی نیست باید. خوج یعنی مبارک میگه مبارک آمد به صورت پریج پریزادی پلنگین پروش میگه نقطه خیلی مهم رو برای شما بگم یکی از اینا این یعنی برن مهار شده؟ یه نشطه مهم هست تم باید چ پیکم براتون م 만들 درم Swam آق hops request ارزمانم که پری اولا یعنی پرده اما میگن خوب اون زیباست چیز که همه مردم اما اون چه همه میمیدونن یکی اینست که این پری با همه دوری موجود زیاد رسمی نیست یعنی حسنش دوریست که دو هر کسی ببینه دیوانه نیشست و به همین دلیل آدم قشی آدم جنی آدم دیوانه رو بودن پرید زده و پریدیده و اهل ورد و افسون رو میگن پریبند پریبند مثل حال جنگی رو نا پریبند در همه در حال پرید یکی و این خود خصوصیت خوبی نیست در کسی پریانه ببینه از هر بود یکی دو دامهش که فقط یک جا تا حاله دیدم او اینست که در کتاب سمک اگیار آمده است که ها رو از دوی بدشون میشه شما دوی بدی میدن و هر جا که بیان از دوشون شما من هم یه جا خواهدی و به هر جهت هر دوتا اینا میرسونه که در این حال که تعریف میکنن آدم ها عاشقشون میشن نه کنم چه میشن می ولی در اعماغ ادب فارسی اینا موجودات مطلوب و وارد علاقه و چیزی نیستن این داشته باشی اما ظاهرا به صورت قهرانهای بی آزار و گاهی اینجا مثلا در شاهنان می‌بینیم به صورت خود سروش خود، چون به صورت یه پریزاد پلنگین خوش درست بکنید. اما در عویستا درست به عکس، یعنی به کلی پری موجود است تموم شده رفت فقط پری موجود اهلیمنیم این هر جا که دعا می‌کنیم، ضرور در کل عویستا که خدای این آفتر وردین آفتر وردین راه نبیه جلال اینو پریانم زمنش دیوان البته این بگم که این متن خود است، ولی در یکی از کتاب‌های من اون نیزاقان که اهل بوده می‌دونم که در در روزگار نیزاقان تحبیداً سرکسات می‌شه نیزاه خان تحریف می‌کنه که دختر شافریون می‌داختن و از او حاجت می‌خواستن یعنی این قریه احریمنی سریعا در علسقه بعدها به شکل بازی‌الحاجات رو هر سلام که آنها مرجع حاج از همین گوزگار فیلوسی می‌بینید که در صفتگل نسبت به قری احیاناً شاید به دلیل آمیخته شدنش با تصمتگور هور هور بهشکی چون در چی کشم؟ چون در قرآن هور جمع هورا،, هورا یعنی دختر شش سیاه دختر شش سیاهی که سیاهی چشمش برسیدیش قلبی داشته بشه یعنی چشم درستش داشته بشه با جمع شوچه هور اونجا این هور خیلی چیزه، محیده و بیراده و عیب نداره اینست که شاید اون تصبرم زنیمه شده با این هم بزنم جسارت اینجا فقط یک موضوع هست در گاتا که کلام خود زردوش باشه نه دیف هست نه پرید در یه اشتاک عوستای افزوده هست بعد از او هست نه مرحال حالا عوستا مدرک این زردوش شدیه قلبت این گاتا محتورترین را خلیمترین بسمتشه و بنده به جزئیات و مساهل نمیرسم نه هم نه بلد هستم کار من اینه کار من اون نیست اگر هم گفت چاکی کرده اینجه هم تو در حد مطالعه این کار و به علاوه مطالعه هم نیست ولی بله عوستا در محترد کلانی و به استثنان من یک محترم به شما که به استثنان قرآن کرد پیراست یعنی سریعا هم گفتش در تاییه 23 سال دوران زندگی به برای اکران بهشون در ادامت و به همون صورت هم شد و شیعه و سنی و تمام فقه های اسپانی هم قرآنشون تمام کتاب های آسمانی دیگه و ازش پوریست که شما متعالیه بکنید به شش میبینید که این در دوران دوران میرشته شما کتاب مقدس که میبا کنید میبینید که چند هزار سال اعتمالاً فاصله زمانی هست بین بعضی دستموزها. اونطوری که تنها جای آسمانیش رو اون که می‌ره، هم میگن مقدس، میگن آسمان. تنها جای آسمانیشون ده فرمان که اون سارا خطور رو ده تا لوحه دریافت کرد، روی لوحا اینا نوشته شده. اون بخشش شو میشه گفت آسمان. ولی میگه بعد از که یک که قوم هزار سال تحقیق کردم، بعداً من چی تو سر این کاولا همینطور مدت ها بعد از میران مدت ها بعد چار نفر چهار نفر هم که بیشتر داد ده نفر کار کردند چهار تاش دست می بعدها اومدم گفتم که ما از گفتارهای هایسان این چیزا یادیم ابستان هم, هم بعد گرفتاری های بسیار داشته دوره اسکندر سرین خورده بعد دوره اشکن هم گفتم اینا ایلاتی بودن قبل به کار بعد در دوره شد. که دوباره در دوره اسلام از بین رخته و گرفتاری های خیلی زیادی درش دید به هر حال یکی آمد خوش از سروش به سانه پریر یه پلنگی نکش من هم میخواستم این شعامت و بدیه یعنی احریمانی بودن پریر رو بگم که در دنیا نظر اسلام به این صورت نبوده یعنی آلت پاکی زگیر که چشم خود که ما میگن کنیم ایران گفتش به راز این سخن در به در در پرجمه فارسی کلمه باب. یعنی هر باب پس پس باب. میده این سخن رو تمام, تمام جزیات این حرف رو براش به راز گفت که دشمن چه سازد همین باب به در. اینجا ساختن به منی آماده شدن. هنوز کاری واقع در نکردید این کلمات همیش کاملا دقیقه الان بگم سازد یعنی این کرد ولی اینجا رو چه سازد همین در آمادگی داره بودی این آمادگی داره سخونتون رو گوش سیامک کسید زکردار بعد پاک میده قدید پر شاخ بچه برای آمادگید بچه جفنونه این هست و چهاری هم دریافت قدرت بدنی خوبی هم داره نکرد که در به در پیگه و بشنبه و بشینه و, و رعی پیران رو نخواست بچه شا شاپچه به جوش سپاه کرد و تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود خود نه آین جنگ روشنه، فقط چیزی که باید بگم این است که تو چهرن فرنگرنش کرد، برای که نز بود نه آین جنگ باید هم ملازم که کل این جنگ، این مصیبت بزرگ سیامک که تنها بچه کیومرس بوده و کشته می کل اینو در ستبیت تمام می شود چیز به جنگ های، جنگ بزرگ کیخوز رو با افلاسی ها که ست ها این شماحیتی رو ندهید بفوشی تن را بچهر مقلن که جوشند نبود خود نعاین جنگ هزیره شدش میبرا جنگ‌جود هزیره یعنی استقبال و یه وقت برای این امتیاز نفت و اینا اون پیشی که میگیرن مساعده از تو گستن پذیره تو رو دوشتن. ولی پذیره وعنی استقبال به استقبالی کسی خیلی هم در چهانم زیاد آمده. پذیره شد یعنی پذیره رفت شدن وعنی رفتن پذیره شدش نمیستقبال پذیره شدش دیب را جنگ رود سپه را چو روی آمد به رود اینجا این دو سپه اون دردو شده این سپای دیل و سپای سیامک سیامک بیامد درهن تنها برای بیخ با دیل آهرمنها بزد چنگ بارون دیل سیاه دوتا هم آورد بالای شاه فکندان تن شاه ساده به چنگال کردش کمرگاه بارونه بارونه همون بارونه هست دیگه من از عجایب بگم اینه البته کنه های خمتی اینده بودم که گاهی کتاب های خمتی قدیم موجودات منفور و اهلیمنی رو که اسم ببرن اینجا مثلا کتاب داریم می نویزه تو قصه های آمیانه مثلا خیلی زیاده داره می اسم شیطان یه اسم یزید یه اسم ابن زیاد تو که ها از این من اینجوری می‌دونیم سهر بزیاد شباره برگرد یعنی اینا بارونن، اینا باشگونن اینا سر و تر حالا، مسئله جالب اینه خب، خب یه این بوده اینجور فکر کردم یعنی احساس تو چون نشون می‌دارم از اجایب بینه کتاب منطره العامل آشق حقس قومی این هم سی سال،, سال. توش چاپ شده تمام شمر رو یزید و زیاد همین هر از مرد خوشنویس حسابی خوشت نشسته کتاب و چاپ گرافوری نوشته تمام این اسم رو خوشت یعنی همین یعنی واجبون یعنی چند وارون دی بسیار دوتا تا اندر آورد بالای شمد تا شدن یعنی خند شدن آخرینش غزل فروضی و اسلامیست حفظ کنم که که شجرم کنده پشت آن که حلفه ها و سر زل با کنید بیوانگاه مثل چله نما ها کنید کار به تماشا کشیده هست یعنی تو بیا تماسای ما تا کی در انتظار بیا مطلعان است برخی تا هزار بیاحت خطاب بعد این ده کردی سیاه زلف دو که در قامت مویم سفید سازی و پشتم دو تا اینجا دو تا یعنی دوتای تا کاملا جدا از هم ولی دو تا قد نه یعنی خمیده دوتا تا اندر آورد بالایش بزن چنگال می‌ودی بسیار دو تا بنده آورد بالایش شاه تکند آن تن شاه را به خاک کردش کمرگاه شهر جنگ، تمام تو آگه شد از مرگ فرزند شاف و تیمار، گیر تیر برای او شد زیاد که اون اولم که این کلپی این دوگاهیش گریان بوده اینا مثل اینکه درش گواهی میرده و همیشون نگران احوال این بچه بوده این است که وقتی کنور شد نراحت یکی از قوای حیص و برد برای پایان ناپذیر که در شاهنامه هست و نصف نشده مثلا یکیش اینه که از تو شاهنامه در میارن که وقتی که مردم بهشون مصیبت می‌رسید از مردم پایین تا مردم بالا پادشاه دربار و غیله چه کاری می‌کردن اخبار هم یاریشون می‌کردن دادشون می‌وردن طرف طرفو آتش می‌زد فقط کرد اساس شهرش گسست عرصه هم که و و مراسم دیگری که حالا کار ندارم اون بحث نیست اما مثلا یکی از کاری که یاد داشت که رفتیل موقع متعالیه خود کنند این است که این مراسم این آداب حکوم اکیم رو در میدید این که حتی تاریزه کار زندگی فردوسی هم یکیش این بوده که پادشاه از اون تخت میانده پایین نیمیشسته بیزن چند جا اشاره میتوند یکیش در, در هزاروه یکی دقیقی میدید که وقتی جامعه هاست تحریف کرد که پسرهای تو خشته میشن باید قاچه ها بلان شده از تخت میمیشسته اینجا میدید که خبر مرگ سیامه که بسید فروب از تخت ویله کنم ویله اسم صدف یعنی صدا مثل توشور و گفر و فرزه رو کهش اسم قرنگیش اسم صبح. اسم فارسیش یعنی کلماتی که اصلا از اصلی شده, شده مثل بعد وقت،, وقت. اینا. اینا اسم صبح. ویله هم همینطور همین هوار کشکم پریاد کشم درود آمد از تحت ویله کنن زنان بر سر و گوشت شاهان کنن حالا یکی از جاهایی که این باب مشهور این گوشته گوشت نیست باب مشهود باب که بخونیم به درود قرز میده آمد از تحت ویله کنن زنان بر سر و گوشت شاهان کنن یعنی گوشت جاید کنچن کنید و چون به حال ما شیخ به نظر که یه قدید دراست دارد پرخون دو پرخون و گل کرده ورخیشتن دوژم دو هم دو ج... همون مثل دوش، دوش و دوش یکی راجب دوش قبلا می حفظه بند یعنی زد و مخاله، در دشمن که حفظه بند دشمن و دشنام و دشوها رو گفتند صورت دیگرش دوشه در دوشخیم یعنی بدکود در دوشم به معنی نمکین و نارا هم در دوشپسند یعنی بدپسند دوژاگاه یعنی بسیار هشتین به طوری که آگاهی را از دسته بود سیر مرز تو راه آن شدنها دود توی کتار رستم و سهران و دیوکیش رستم شد زمین رفت دین دونو برداشت که رستم برای خزبان داد غمیب و دلش ساز نفتیر کرد کمند وست و تکشت پرستیر کرد برفت و به رخشنده را ورد پای برافتو و به رخشنگر آورد پای واسه جنگوه اون کلمه یادمونیست آن پیل پیکر زجای سوی مرز توی رانش تنها برون چو شیر دوژاگاه تو دوژم دو کرده و پیشتن روزگاه پروشی بر آمده وشگر بذار سخت بردرش هم بیار آقا ببینید میگه همه جامعه ها که از ده پیروز نیست ولی این به عادت آدابورسون جاری خود بوزگار فرگوسیست که نیلی میخوشیدن رنگ نیلی نشان مواتن زدگاه میگه همه جامعه ها که از ده پیروز رنگ دو چشم اپرخونین دروح بادرنگ، بالنگ بشینگن، مرقباش هم درست میکنن زرد مرکبات و رنگی و خیلی بسیار پرچینه، در حقیقت این کسایی که مثل و بادرنگ و بالنگ و این‌ها، کراکیم ایست مغزشن، این میوش کراکیم کشت توسکشی میگیرن از سطح در زمالا چون صحبت مراکباتی شمایی بینم شما بگم که چه روشون که هم مراکبات برای که باز اگه نگرم میترسم تو زیبتون نگیرم هرمز کنم بیکیه در دوره صفبیه اینا از حارجان یعنی درخت نارنج داشتن ولی پورتوال در طریعت وجود نداریم درخط پرتغال نداریم تخم پرتغال هم بکنیم در نداریم روی پایه نارنج گو یا نیموشیرین رو پیوند میکنن یا حالا یه جور دیگه ای ولی هرها رو پیوند میکنی. این کار رو یعنی صافتن پرتغال رو در دوره صحبیه در اینان رایت شد چون اول بار اون چیز از پرتغال رو بود داره شد پرتغال بشه. در پاکستان و هند، بهش میگن مالتا برای که از مارتون رو بود اسم طالن تازه است بعد اینا رو چون پیبند رو، عمل پیبند رو بهشون روخن ترکیب بنابراین بنابرایم اسم اینا شده مرکبات یعنی میواهای پیبند همه جامعه ها کرد پیو زدن، دوششم خون به خونم, خونم شدن. چشم هم مثل که یه بار تو هر سدم، بله برای دوستان که از تراحت هیچ هر از از این هیچ هرگی نیست. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. متأخیر است. و رگ های که 33-36 می خودی متورده میشه بخونی می سرخ میشه بنابراین چشم به نظر میاد اینی که هشت, بخوندیم. هشت بخوندیم به باید ها به مطلب می بخونیم دد و مرب و گروه برفتن و کنن دد رو ارز کردم به معنی حیوانات دررنده دام به معنی حیوانات قیر دررنده وحشی مخشیرم هم که همی شکر برفتم با سویدگاری در و درگاه کشام برخواست گرم خب بردم تا هم جد بس, دید. بس, دید. بس دید. قرار می‌کنید یک, سال... سال. یک سال... سال یک سال کارون صورت‌گیری شوابت عضو از سال, باید. باید. سال... بار. پیام آمد از داور کردگار سرود داویدش باز با در دست سرود از این و بازار اوج سپه سال رو برکش به فرمان من برامر یکی جرد از آن انجام از آن بدکنشتی روی زمین به پرداز و پردخته کن پرداختن از خیلهای خیلهای خاصی پرداختن بکاری به معنی مشکول شدن در پرداختن از کاری به معنی فارغ شدن از این حافظ میگه که توی اون چیزی ایگه شمشیر جفا و سر ما آختهی دشمن از دوت ندانسته و نشناختگی میگه من دل از مهر تو با غیر نپرداختن یعنی دلم, دلم از تو فارغ بشه بره روی من دل از مهر تو باقی نپرداختم تو دل از ما به که پرداخت میتحجب کنم حالا میگه که ازان بد کنش روی زمین به پرداخت این روی زمین خالی پرداختن از این خالی کردن البته معنی های متعدد دیگر هم داره این پوردادن میگرم پرداخت میکنن باز معنیش اینه که صندوق خالی بکنه پرداختن همینه پرداخت کردن و جلا دادن آه. و بیشتر مشغول شدن اینه که معمولا مشکول شدنه اینکار اینچه پرداختن فیل اونجا همش پرداختن حضیب از آن بدکنشی روی زمین بپرداز و پردخته کن، پردخته هم مخطبا هم است. باز پردخته کن دل ز که یعنی چی نزده رو بیریم تو پیام یا پیام؟ پیام دوش فتح گذشت درست دو بوده توی قدیم که نام بر سر توی آسمان برابر و باد خواست بد بد یعنی بر بد گمان، یعنی نیست پیدا بدان برترین نام یا نام یزدان شو بخاند و بهالو از خاص من جهت که در باب رابطه اسم مصما حرف بزنم من می گفتم که میگم که ما راه درست نمی‌یافتیم یاد ارز که یه چیزی هستی یه اغلب همین شما هم که اسمی داره که بشنید اسم اعظم اسم اعظم که اگر کسی خدا رو با اون اسم بخانه همچی خواهد و اعتقال قدیمی شیعه و سامنیم حافظ میگه اسم اعظم کار خوده این دلتوش دل، دل، دل. این تصبر اسم اعظم حالا اینم هیچ کس نمیده کسی هم که میدونه به هیچ کس که این چیز این اسم اعظم که از قدیمم میگفتن نسل که بوده اگر کسی میتونسته به کسی یاد در مصنبی مولانا یه داستانی هست همین درباق این که که از در اسرائیل که به زبان جانوران یاد. یادید اسم عظم خاصیتشونه و الان برای که که این شبتی به اسلام خیلی خیلی قدیمتا از این در هند، در وصحب هندوییست نه عرضی دارن که ای کسی کشنا رو بزار بزرگ شد. اون که است صدا بکنه هرکی میخواد میده و این صداش مم، باید جوی توی بعد ده هزار دفعه میشینم این کارو می به این حساب که یکیش لاعقل به اون سورتی نگاهان در بیاده و بعد که نشد میگن که ما درست شانه شده نیست درست و کنم که این تصور نتیجه بستگی اسرارانی زیست بشر ادگاهی برای رابطه بین اس و می کردی که نام یه رابطه جاگویی با مسماده و اگر نام و نام رو هم رابطه وین شد تصمیر شخص و خودش این من هر که بشرای اطولیه‌ی لغت برحمه‌ی وقت‌بعد نمی‌شه سن تصویر این شکار‌ها و, و رو روی سنگ تاریخ می‌کش کاملا حاملاً و بعدها اولش علم‌ها فاید کردند که بخ بشر شکارگر بشری بشار، لباس در که تقییه نکرمی چه زب همهاری خوب داشته اولا زب همهاری نداشته از هم با اون سرما و با اون بردوختی و لغت و بردوخت و گشنه و در خطر داهم که همه کش بکنه، این کار این تصور میکرده که اون کشیدن، اون تصویر موجب میشه این تصویر صحابش رو بکنه و بیاد دوره دست سنین، این دوره بگیریش دوره بکنه همه این زحمت این کاری هم برای این و تمام قصه تلسم و تلسمات و این شکلایی که می کشم دوی اینا با اونمان تکاری از رابطه بین تصویر و سوال بزن. و هم رابطه بین اسم و مصمت که بعد می که این تصور از قدیم می خدا رو به برترین نامش کانتی برطرین نام درست ترجمه اسم اعظم و هم به حال تحصر میگنیم کرد بدان برترین نام گزدانش را بخوند و به پالود مجدانش را پالودن یعنی تصریع یعنی اشکت رو اون حال تحصر هم آره این همی در قرآن آمده خدا رو با تذر و, و زایی رو کنید اطلا خیلی بدان برترین نام گزدانش را بخوند به بپارو مجدانش را بزان پس به کیم سیامکش داخت شب آرامش رو روز گردن نیاد از اصلا آسایشش به دلیس هم سیامک خجه هسته یکی دوری داشت که نزده میاد جای دستور دستور یا میوزه شد دست، من صحبا کردم یعنی دست بذارت میزای پچولوی که روش کار کردن، میزای توتی که دست، دست با دستوری یعنی کسی که صحاب دست بذارت که پسر سیامر در حجم وزیر جردش اینجا نقطه خیلی خیلی مهم است. که این از عجایبه که بارها و بارها کشان رو از همین اولین بشر اولاد بلافصلش هست میشه پسرش نقطه میرونی جلوتر ایراج و سلمتور وقتی کردیم، هر سشون پشته می‌شن چه میاد که مره‌ی دو خود شد این جلوتر شاهزاده‌ی بسیار شایسته‌ی ای ایرانی، سیاوشت به سر کیکابوز تو جانشین و, و بلیهت اونجه از اونی پرداشتون شد، نفر سه‌که بچه شد پسر پهلوان و بسیار قفی و اصلاح مقدسش استندیار استندیار، تو یه مورز از بین می میره، پسر بزرگش فهمن داشت میشه یعنی همیشه یه مسلسه که نفر دوبوم از این اصلاح پس میشه. و در تاریخ هم نگاه کنید نظرین این تکرش از جمله یکیش، یکیشم آخری آخری بعض از تا بسرد سرد همش خوب کار <تصفح> نشون. <تصفح> که ولی عباس میرزا بود دولتشاه، پسر دوگرش که خیلی آدم ارتو رو گردن که بود مدعی مادرش قاجار نبود چه بود عباس میرزا عباس میرزا مرد, عباس مرد. و از این تا پسر فتح محمد میرزای پسر عباس میرزای جانش این یک شد از اون بچه هایی که تازه است این یه پدیده خیلی جالبی که هست و اینجا هم همی توییم شد این اولینش از ذره سیر تاریخی سیامک یکی پردسته یکی پرداشت که نزده میان جای دست زیر داشت پرانمایه نام روشنگ بود تو گفتی همه روش و پرهنگ به از نیاف یادگار پدر قدر نیاف از وریده به معنی دایی هم هست و جد دایی هم هست دلیلش این است که در خانواده های ببخشید سالاری به مادر فواری وقتی زنا بزرت قبولی در دست داشتن شوهر اصلا کسی نبود زن سال, سال یا هر وقتی درش قانون می کانوم می‌کی، آقا رو می‌کرد یا آقای دیگه بنابراین بچه‌هایی که این زن می‌آورد و تربیت و براوردنشون که آداء و بسیار بسیار سخت می‌انداشتون آقایین پازوشایی به نام از اونایی که در اول نوجبانیش خد نمی‌کردن این یکی هم که حالا شما خیال میکنم که با سنگ چرخماق میتوشن نمیزنم <تصفيق> خیلی مراسم بسیار دوشباری دارید که اگر یه وقت لیتون میخواد کتاب مردم شناسی رازمان خیلی جمعه علمی مفسر میشونی کتاب مردم شناسی عادی ارتلاعات لرور مردم شناسی بگیرید تمام این آداب این و هم اونجا و نشون میده که سرچشمه بسیاری از این اعتقادات ما اصلا کجا هست به هر حال به همین داریم چون دایی متوسطی پرورش این بچه این آزمایش های بسیار بسیار دشوار هم میکردن و هیچ پرگاهی نشنند که بچه بمیرود اگه بچه توی این مجردها تا حرف این برد میورد میگردت میورد، میورد، هم که قابل مرد جواب نارد برای شکه قابل دنیا مردی باید, باید اتخابت بذاره باید ا آزمایش ها پیوی سوید فرحا که به همین دلیل نیا به معنی پدر و معنی جرد و اینا به معنی دایی هم بفارده. نیایش به جای پدر داد، به جای پسر داد. نوش بود ولی جای بسرد جزو بر کسی چش نگماش چو ها دل کینه را چی اون دل و جنگ که سروش آمده بودش و از احیمان روی به ترداز بخواندام گراموی همه گفتنی ها به دون بازدود همه راز ها از مورد. مورد از راز ها که سروش که من لشتری کرد خواهم همی باز کردن سپاه کردن که من لشگری کرد خواهم همی خروشی برآورد خواهم همی میبینو که همی علامت اسمگار که باید جلو جلو باشه اومده اغب اغب کرد خواهم همی یعنی همه خواهم کرد بنابرای این خواهده این است که این می و همی رو ثباب اصلا میره رو پس میام پیش میشه می ها هم همی حالا همین که فراکونه بوی جوی بودیان آید همین یادیار ها رو آید همین سهر ندکی ولی می هم صناعی مثلا داره که بمیره ای دوز از مرگ اگر می زندگی خواه یعنی اگر زندگی ببیره یوز پیش از مرگ اگر می زندگی خواهیی که ادریس هست چه مردن بهشتی گرشت پیش از مردن. بنابراین میرو رو می علامت اسمدار رو بهتر است درماغان ایشتن ثوابی بیسیم بنابراین کلمه جدا می ده از نکنم خب ولی بیره بیره به تضمیم رو میشه شه چسپون؟ به تأکیب سرفیل رو باید چسپون به حرف ازادتر رو نکوم به یه حرف گاهی وقتی که یه مثل وقتی که حرف از اون دو کردم باشم دو هر دو به به که خیلی دیگر بشه بشه. ولی معمولا به یه که من لشگری کرد هم تا هم همین کروشی براورت تا هم کنم همین. که من رفتنی هم تو وقتی که دو فعل نیاد با هم در تاهم زبنای هندو اروپایی هم, هم به سیده مستر. خواهم رفت یعنی خواهم رفتن اون رفت فعل رفتن رفت و آمد رفت و آمد یعنی رفتن و آماده هن واضی نیست خواهم رفت هم دوشه خواهم رفت یعنی خواهم رفتن خواهم رفت demek یعنی خواهم بنابراین باید بود، باید یعنی باید بود، باید بود یعنی باید بودن بود باید یکی از شاعرهای جمپون خیلی خوبی بود که در پاریس هست چه کرده، روز گرده که هم خرابه اون عنوانش از شاید بوده دختان شاید بوده نمیشه. یا چطور نمیشی؟ دختان برای اینکه تا خیل وقتی میاد هم دو مصیبه مستری که شاید بوده بودم مازی نیست بود مستری شاید بودن شاید بوده نمیاد دوتو خیلی پوستره هم دوتو نمیاد البته سایه آورده نمیدانم چه میخواهم بگویم. ولی این درست نیست چه می‌خواهم گفت چه می‌خواهم گفت تو همثال بود باید یعنی باید می‌کنم تو را بود باید همین پیش که من رفتنی هم رفتنی با یای لیاقتیم یعنی رفتنی تو کرد شیر از دررندگان گرگ و ببر دلیر سپاهی دد و دام و و قریر سبهدار با گیر و کندار می شیر و سپاه، سپاه هم کردم این درست که بشر الان خواهیم رسید بعد بشر اول کار که با حیوانات پیگه می‌کنه، توشش می‌کنه تمام حیوانات و تا زیادی هم توفیق بیده. تنها که رام بشونه بودنه، یکی گراز الانش هم می که که اون انگاه حیوانات می‌دن باشن، انگاه این است که اول کوشش کردارا خواهیم بسید خواهیم یه سر جاش بحث و بسر کرد کوشش میکردن که همه یه ایمات هم بعد اونایی که بهتر بودن در بیشتر پایده داشتن چه از درم دگان، چه از پرم دگان، چه از چهار پایان چه از... چه از... چه از... چه از... چه نگه را داشتن تا اون شما آزاد کلمه را دورد کنن این است که میگه که باب روشی و پلنگ را انجام کردن و پری و تیم یه چیزی تسببیس از اون ارتباط آدمیزا با, با هیوانات یه و در زمین مثلی یه بار عرض کردم که کسانی که با عالم ماورای قدیدی ارتباط داشتن که پادشاهان به دلیل داشتن فرقی زدی جز این افراد دیدن اینا موقعه دیدن که این افراد هیوانات هم به فرمشون زبانشون میدونن فرمانشون هم ازشون بتاعت میکنم افثانه های بسیار هست در باره متثبته که مثلا سوار شیر شده یه مار هم مثل تازیانه های گرفت که میزد که ما این شیار سوار میشتون مثلا خیلی زیاد یعنی زیادی که این رامش شده والا اینا افثانه ولی این از یه تصور خیلی خیلی قدیمتری سرچشمه می میگیره اون تصور همین که مقام روحانی بالا سرت که داره با چیز جن مثل گفتم یعنی موجود پنهان جنت یعنی بهشت یعنی باغ پنهان و سفر رو عرب داشت میگه جنه جنه یعنی چیز روی روی پنهان شد پس جن یعنی موجود پنهانی و هم مجنونه، یعنی دیوونه یعنی جن زده، یعنی کسی که با جن ارتباط داره. خلاص سکر مجنون که فارسی جمع میشه دیوانه با دیو همون جن، از مغوله جن و شیطانی دیوانه یعنی کسی که با دیو ارتباط دره بنابراین این که تو نظامی میبینیم که دور مجنون بوش و سوا آمده بودن و جن شد و دنه. این به دلیل هم مجنون بودن میشه یار میکردن خود، هست. نه مطالبی است که آدم وقتی که یه ذره عقل داشته باشه، تازه عقل رس میشه فکر کنه که چه مزخرفیه مرتکب افتیم دیگه میشه یه آدم دورش بیاد ببینن و شی و ببر و پلنگ و روباه اون شغال اینا همه‌اش جمع شدن چه چه به نظامی شاعر این گندگی این چیچیه گفته ولی وقتی یه ذره دقیق‌تر مطالعه می‌کنی یه تو ای این شی این و افسانه ها و, ها و مسائل می‌بینی که او این چقدر بیشه کوهن داره در کجاه ها و به چه ترتیب این اعتقاد پیدا میکنه با اعتقاداتی که هزاران سال همراه باشه اینو این هم همینطوره، همینجا هم همینطوره که دد و دام و مرغ و پری سپانه اینجا دد و دام رو حلس کردم دد به معنی حیمان درونده وحشیست دام به معنی حیمان حرفکار وحشی، وحشی اونی که اهلی میشه بزرگاشو بهش میگفتم سطور و کوچیکاشو مثل بوزفند و بزرگ رو میگفتن فشو اف فه و شین و با فشو و حفظ کننده اینا رو بهش گفتن فشو پان فشو پان به دو صورت در کارست یکی واسه یکی هم شوبان شبان شوبان شبان، شبان. شبان،, شبان،, شبان شبان از یکی و از اون فشوب است اون هیوان در, در یه وحشی غیر مزرده. و دام ببخشید ¡دام! خوشمه در دانه حیوان وحشی دام به یه وحشی غیر مزرده. مرگ هم به معنی مطلب پرنده است این که ما امروز بشیم این این اسمش مرگ خانده یا ماکی وقتی حافظ میگه که هوا و نفس کشت و باد، نافد و شاد گره، و مور در خوروش آمد مرگ در شون پرنده یا سعدی میگه دوش مرگی به صبح مینالید عقل و سبرم دو مرگی که آقا دوش مرگ اینو پرده کرده اینم قدیمی است در عدستایی مره و شده مرگ توانی پرندیزی بنابراین این مرغ هم، حالا مرغ هم انباه احسان داره هم دانخواه رو بیازار داره هم مرگای شکاری و مزهر هست بشرباز و همه اینام سراغ همه اینام رفته حالا بازدان شده سپاهی دد و دام و مرخ و قریص خندار با گیر و کندابلی کندابلی یعنی پهلبانی و پشندت و حسرانی پس, پس پشت لشکر بونه رو نگه اندرشی که سالار سالار لشکر چند دیده اقفدار لشکر هم که اونه پشت لشکر که اونه هست تبیره به پیشندرون و سپاه تبیره نا آقاید نا بنده در این کتاب آفرگیت روزی یه مقاله دارم دیر سیاه، دیر سفید و دیر دیازن، دیازن در شاهم چند بار، چند جا تا جردیب، هر سو اگر این مقاله رو دوستان ندارند دوستان دو ندارند که حالا آمند باشند می‌کنند دوستان آخر کنند مقاله دیو, دیو رو بگیرند به خصوص که عرض کردند که, همون که دیو همون به بودی که اینجا دیو سیاه بیامد سیاه دیوی این در زم خود فردوبسیل در مورد شرح احوال دیو سفید یه درمان سر کلاس سوال دادم برای چارم که دیر سفید بله سیاه بود یا سفید بود؟ دیر سفید رو بردوزی میگه مواش کاملا سفید بود مثل برف و مثل بیر سیاه بود به این درمیشون دیر سفید بود منابراین سفید سیاه بود، دیر درم سیاه, سیاه دیر بی ترس و باک همی با برپراکن با آسمان یعنی چیز گردنده در قرصی آسمان اسمانه فلک تو فکران نگرده از همین گرفتی شده است آس به آسیا <تصفح> به اعتبار گشت به همون اگر با دست باشه میشه دست داست اگر با آب باشه میشه آسیاب یعنی آس آبی اگر با خر باشیم میشه خراس یعنی سنگ آسیایی که با خر میگه و نظامی دندونها رو میگه قراص یعنی آسیابی خوردن یعنی به هر جوم چقدر شعره نشنگی به هر جو که افکن دمندر قراص، دو باز دادم به جو پرشناس به هر جو که افکند من در کراس دو باز دادم به جو پرشناس هزار آخرین و سپنگستری که باز آرد از هر جوی جو پرشناس جو ارز کنم که آسمان این گردم با آسمان بر پراکندهاد گردوهاد بیکردن یالا این هم مجازی هستن و عنی حریفی گرد خواهد جدن و زدن اون از هست را در رندگان چنگ دیب شده سوست و از خشم گیهان در رندگانی که در لشکری جمعه بودن و هم از خشم خداوند گیهان خدی. دیفت سوست شده و اینکه دیفت جمعه احریانی داره و اینها احریانی بودن به هم برپتادم هر دو گروه بازم میدونید که تره دید در زفر کسیره دو بچهره در دقیقه همه به هم برپتادم هر دو گروه شدم دستد و دام ایوان سکوب بیازید بیازیدن اعتراض کردن بیازید تنشید دوشنگ چنگ جهان کرد بردیب نستو نه. نستو یعنی کسی که استوتو نمیاد یعنی خستم این خزید بیازید چون شیر رو چند چند جهان کرد بردیب نستو کشیدش سراخا یک سر دوال سه بریدان سر ناهماد از سر تا خواش دوار کشید دومنیم کنش کشید بکیم که بس کچه هم یکی دیگه اونیست که میگن تسمه از پشتی بود یکی از عقوبتهای بسیار بهشت‌آور در گذشته این بوده که محکوم یا مجرم به آدم برد بر رو و از پشت رو یه یه پوست پس اون که دوال کشن این کار رو زنده زنده پوست شاعر رو زنده زنده سر بازار پوست کردن و پیلی شدیه بوده دفتر صفت مرکب یا صفت فعلی مراکب و مراکبه هم بعد پیشاوند یا پساوندی در عرب استقایی دادیم از یکی و یکی یعنی سر و سرور و سید و سالا رو این در کلمه پادشاه پادشاه یعنی در فارسی پاد. یا به صورت پاد آمده پیشفن پادشاه یا به صورت بد و پد آمده پسابن مثل سفهوت نوبت سفه این رئیس نوبت این رئیس نه. یه دیگر هم داریم که اون هم شده پاد و پا و پد به معنی زد و مخاله. پاد زد یعنی زد, زد. خالص بن عزت وصفا خالص وصفا وصفا خالص وصفا آداش خالص بهشت یعنی ضد پا یعنی در مقابل چیزی در مقابل بدارن شما یه کاری میکنید پاداش بتونه یعنی در مقابل اون کار خوب یه چیزی بتونه خالص بهشت و هم پاذر مثلا هست به صورت پت، در کلمه پتیاره پتیاره کلمه خیلی وحشتناکی نیست کلمه بیچاره بدناف شده پتیاره یعنی ضد یاری اولان برای مرد و زن هرزون کار بره دوم که دو پتیاره دشمن یعنی ضد یاری، تا یاره ضد، دشمن، ضد یاری برها، یعنی فرموده سفه کشی دشتراپا یک سر سردوال حالا نگو میتیم و نمیدونم سپحمت خوری کنسر نامال، همال و هامال یعنی همسر و همتراز بنارین ناهمال یعنی کسی که داغه بود یه عزیزی به پایان اندفت گند و دست و خار یکی از می که اون نکنن نیتنات این حتی تا این حد که گفتن که بدن امام حسین هم و از اینکه کشتن و من نمیدونم دونم از یا نه برای اینکه وضعیه کلش شاید نیم ساعت بسن. برای که شما حتی اقل سپاهی از اینجور که بگید همده اقل، هزار هم هزار اینا به این نوشتن هفتا دوزوتان دو هست که هفتا تا باز بگید. به دلیل مقدس بودن عدد هفتا دوزوتان هست هنگه خیلی اما آماده برای جنگ نبودن، یه دوست دوشون مردم رشیدی بودن، مهمترینشون از تحباس بود، خود امام یه باقی جوون بودن، هتا یکتار جوان بود، هیده، بود، باقی بود، باقی که هم دومی اینا این یه هزار نفر جمعیت افتیگیان، در ضرور نیم ساعت کلک میکنن، تمامیشون بیر که کارش و یه بنده خدایی به نام ملاقای دربندی یک کتابی نوشتران سعادات ناصرینیه به نام ناصرین شا در اونجا ثابت می‌کنه که روز عاشورا هفته دو ساعت روزشا؟ نشبه دلیلش اینه که شما که این همه احادیث این همه خبر کنید که امام انقدر ترس که تا زام رو ازش خون اومد از ده واس نمیدونم این رو اون و اون رو تو أشده قاسم اون دردونی که اون کردونه که اون کردونه من قره نمیزيد لیاهی اون کردو کرد کرد شما یعنی میگین که اینا همینش که اون نیم ساعت هم جنگ نکردن هر نفر ایمان نیم ساعت هم جنگ کرد مثلا 72 تا نیم ساعت درسته بعدم میدونیم که زور آشورا از یه خ بنابراین وقتی از صبح تا ظهرش تقریبا 2 ساعت یعنی سی و شیست ساعت بشه. سی و شیست ساعت بعد از ظهر اما اگر اشکال دارید در این روز انقدر نمیشه. اونم که جوابش روشنه. مگه برای حضرت این در جبه اون دهانه کردن که خدا آفتاب رو نگه داشت، رد shaft تا این جنگش تموم بشه. مگه برای علی بهبی تارات نگفتن که پیغمبر دعا کرد روز طولانی شد تا خوشید و پرنه خود از داشت تا وقتی که جنگ تمام بشه. اون روز هم همینطور این روز ادامه داشته به هفته دوست به ولی این که این مسئله این صورت از تانکه بعد سازمان داده بشه که بیان و برن و عصد به تازنان این ها اصلا این تعداد به قرد یه انگاش نماری ببین تازگه در زفت مدت خیلی اما جز آین بیرهنی و خوار کردن و بب کردن و کاملا سرکوب کردن و پاهار کردن دشمن یکی هم بوده که جسدش رو له بکن و این هم یکی بعضی که سرشون برید و از از پشش کشید به پاین درست کند و بسپور، باسپورد همینوش را رد بسپورد کار دریدش، بر اون چرم و، از اینجا به که باید پیش داشه چرم این خود دیده دریدش، و، دید بله؟ بله. زیر پا کردن، به پاسه کردن، کاموار پا کنه